بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الله علی رسول الله <سوء> و آل طاهرین و و اللهم از شد در مرحبتی که راجعه به برژیه بود منطقی شد به برژیه در کتاب و از کردیم که بداعات اصولی در مرحبت اصول مناقشاتی که در برژیه در کتاب شد بداعات در کتاب در فر سمون قدیم مناقشات زنی می کنند یا بزن راجعه به خطابات شفاقی بود این بحث خطابات شفاقی در امارات مثل سایمانه از در منشه این هم شد که خطابات شفاقی بوجه نماشی این بحث اصولی از اون روش این شد این بحث اصولی آمین اخباری ها مبنون ها همه از این که مثلا مجموعه رقایات ما دلالت میکنه در این که دوانه کتاب آقا تمثل و گفت نیست چون دامه ی محصد از دوست بکنید با اصوله یعنی کل اصول رو باطنید نه این از دوانه کتاب رو به خصوص بشید مثلا کرد به خاطر بکنید که هست کردیم بعد از ایشان ابدید. با دماغشون از محمنون شکر که عدد زیادی از رواده ها سو جمع کردم در اینکه که بایی باقی در با بایی بیدم بایی بکنم داره تو دا بازم و حقیق داره که نرواده هستی سو جمع که درواده کتاب تو نیست در توضیح ها داشته بزنید من دیوز تن می کنم بگم محمنون رو دارم به چنان در از این بزن ارسان بیاید که پس به قول <سؤال> شدیه من رو نعمتی ما را بیوزر اخواهی به مسلک <سؤال> و سامرانی <سؤال> که فرانه علمی و از این فرماهی که مثلا از این طوری برخورد بشه برس رو مطلب میکنه نتیجه که دیوز به این برسرسی اینه که انصافاً ارتضام رویش محلن که آیات مبارکه دوادرشون چه در احکام در مطلب محارف قرآنی در مطلب محارف دوادر آیات کتاب هست اون رو ثابت کردن انصافاً خلاف باطنه خلاف مجنونه کسیر این آیات بلکه خلاف باطنه گهده در این مصبابات اسلام در سود سالیش داشتن و با اون روایاتی که اینها و بردن شیر استفاده نمیشه مضاقا بین که اون اصولا واضح نیست و بردی هم که احتمالا دلالت میکنه ناظر بینه که قرآن یک راز رازارمد خاصی داره سریع نمیتونیم به ظاهر یک آیه تمثل کنیم باید محیطی در شهر اطرافش حدود خصوصیاتش خصوصا ما از ما از شده و خصوصا در بنده ما الان شو دیگه هر آیه از آیات کتاب چه در احوال شده الان چه در شعر در توی این 15 قرن میگذرد مرحله به هر روز شده هر آیه مورد بحث و کثار و تدقیق و نقد و اشراق و احتمالات و این جور چیز میگه مثلا تصور بکنید هر حدیث که بس این اقتلاع نگاه خب شمع داره مورد داره داره حالا خود کلمه شمع نوزور داره بحث بحث آن اینجا نیست چرا سر شده مضاهم که در بحث های هم خود محتب و خود شیعه اه. که عملش نرانش با آیاد تبید آیاد اطلاع آیاد مساله که روشنی داره نیمخوام بگم صد بر هم, هم هست اصلا ظاهر صدو آیه برای در یکون جناحان هم تقصیم رو به سلاس مسافر داره و ظاهر زاگر مرموشی و بردادی ها میسی سیده مرتزانه اون سلاس خوب سرن این طور نیست که حتیم مثلا در طول تاریخ ما شیعن مختبر بودن در اون هم اختلاف داشته و که این طور نیست که می با همین اختلافات به نتایج واضحی برسیم که هر در محط خودش کنشی که پس این مدنه اصولا مدنه این انصافا که بعد در صاحب اختصاص نداریم آمین تک نکنون بحث ما اخباری حصولیه مدنه ایران که مرمون قومی رحمی محاملا اونان تو همین بحث گرفته دو سی جوری ایشون آخلاً زواگر کتاب رو بجرد میدونن از باب زن مطلق یعنی از بابا بجرد زن بخاطر این صدا به که ما را میناداریم دوز عملی بزن اگر بنابرای اوچه وصول به پیدا مشکل دارید در از احکام پس برمیگردیم بزن به نظر من این هم از حرف اخوالی ها شناعتش کمتر نیست مشکلیش کمتر نیست یک کتاب بزرگ الهی که برای کل نقسهای بشر آمده این رو ببریم او مسئله زن و بهان و خیالات و بگیم نه وصول و اطمینانی بهش نداریم منتها چون راهی دییه غیراز زن نیست زن, نیز زن نیز ما فرن در بعضی جاها مس که آیا وقت داخل شده یا نه مین به زن دخول وقت اکتفا بکند بس ما قبول نکردم ا بحسش یا درباق نماز رکعات نماز اگر شکر زندش بیه کرد شد او احمد این درست این ببارد در این مطلب سهی ای. پس تا ما بر این شما بگیم مثل این موارد که آیات کتاب خود از باب رو خود زنده این هم انصافا مثل اول مرمون اولا محمدرمین اول اول احترابایی قادر از مشکل نیست این هم تنزیل بردوران و تنقیص شمه قرآن کم این که مثلت ثبونی که قادر اصولی ما من در دوره جدید اصولی و اون این که حجیت زواهر کلام و من ها زواهر اتفاق حجیتش از باب زن خواسته نه زن مخلط اون زن گیرسه زنده یعنی زن بختی از ضرور به خصوص خودت. یک هم زمینه که از زواهر پیدا میشه. خب اینم مبدونی که چه دیگه مبانی رو که یکی روش اعتراف و همین مبنایی که در کتب نایمی و بر و استاد دیگران آمده که زواهر به کلام خود من. در این زن خاصید. نه اجازه صحبت می‌کنند این از یک زنده خاصی است نه از باب زنده و من ها کتاب بله این زن است که دلیل بر آمده جیتش آمازه از اون سیره مثلا سیر دلیل بر که جیتش شده ولی این هم مفید زن خاص این هم درستی است نظر ما هم در مطلق درست نیست ما در قرف اینا بر اثر احتمالات و ابداع احتمالات صحبت کرده و این خب معلوم ابداع احتمالات ذهن انسان رو اصولا مشبه میکنه انسان رو انسان شازی با میانه حالا من دارم صحبت میکنم حتی من مفهوم محروم واضح شما میفهمم شما جواب میدین اشکال میتونین بگیم نه این ها همه زنگیه. من که این حرف گفتم شما نفهم زیدی شما یه رو چه جامعه بم همچین چیزی هم وقوع نداره بلکه حلس کردین این ها علمی است قطعی علم این علم قرفی در نظر قرف اصلا تفسیر قرده موشه یه اصولا این تفسیر زمانه که از وسائل بسیار مهم پیش بشر و, و روشنگریه و به تعبیر برآنی علم بیان خودش بیان به معنای در درداره عربی معنای جداییه یزا در فراق و جدا شده هم کلمه اصیری ما در مجاست اون قصه که یه معروضه که در پیشه پیخنبر کنن بانت سوال بانت این جدا شد من جدا شد فقط بیومه داخلی این به این بیان یعنی جدا کردم و از کردم این در ذهنیت انسان حرکیهی بود که منشأ جهل ما مخلوق شدنه ولی هم شبه کلمه شبه رو بکار می بردن که در نهر بلاقه هم داره که این نماسومیت شبه شبه به اشتباه باطل به حق یعنی درست نمیشیم تشکیل سدیم که این حق یا باطل داده به شبه یا پس این مثلا چراق نباشه شما یک چیزی باشید میدونید این تنابه یا مار مثلا با مثال یا میبینید قلمه چیه تشکیز نمیدید اما وقتی چراق آمند جزا میشه یعنی چیه این مشخص میشه که این با این تنابه این مثلا ماره این قلم این مثلا تصویهه تمام این خصوصیات کلمه بیان، بریان قلزمه خداوند مطعاق به انسانی قدرت دارتی و بیان اختصاف به لحظ نداره خبول داره. اما لحظی که از مسادیر باردشه یکی از که بارد بیان خود که لحظه که لحظ میتونه دقیقا خصوصیات رو با قدرت دقیق بیان بکنه این هست یعنی به خیلی مثلا تمام اینها بیان نیستند زن خاصن انصافت خلاف بشیاره خلاف زادر و غرفی ماست برد یه حد خاصی هست یه حد حالا بیان کنگه شد مثلا با آب بیار آب و آب من بیارم بیارم بیارم چی؟ که ما بشینیم این مطلبی رو سعی کنیم احتمالات خلاف رو به با تقرار و تجربه و سؤال و جواب و فردرسی جمعانه این هم یک ای درجه که علمه که اصطلاح هم علمه اصطلاحی و منطقه میگیم و فلس این هم یک ای درجه از علمه این هم یک ای درجه دیگه از علمه و اصولا من از کردم امکار رو جید زواهر در قرب مثل این که انسان در نواقع سفر این کار موجود بکنه چون صورت هستایی میشه نشت زواهر در قرب نشت همون اصل اصفات وجوده این چون رو ند ما اگر مونیشه به از غوافظ بشیم اگر این زبان روزن نخواست این اصلا دنابی اجتماع رو برم میزنم این همه قدوم به بشر رسیده نوشته دو هزار سال سه هزار سال چهار هزار سال نوشته های کن آماله پنگ هزار سال برگو خودم این احران نصر دیگه نوشته های هست و در چین هست این معنیش این هست که تمزن بشری و اصوله زیر س با خیالات و با اوهام و این ظاهرم این سه یکی در مطلب زواهر یکی در زواهر کتاب زن خاص بگیم آم بگیم یکی هم اصلا بگیم زن بیشی خود جد نیست به نظر ما هر سه مبنا دور از ثوابه و تحریدشم از کردیم اینا به نظر ما میاد که وشه حقیقت ظهور رو کشت از مراد میدونن اون نکته رو این یعنی ما لفظ و تصور میدونم برای اصول به مراد مثلا ای با باب ما زن پیدا می‌کنیم که ما در آقمایه خاصه بیارم اون تهل خاص معاین این زن برده به کشت ما ما این معلوم نیست او اقلالیت داشته باشه اشکال اینجاست اونی که ما بیشتر در جنبه‌های های خوهدایی هران باش برخورد یک نوع تثیر حضییت زواهر بر اساس میسا و خوهدایی این بر اساس میساییست بین خوهدا در این که مثلا اگه گفتن آق اون مایه خاص مراده بیار اون مراده که اون, اون مراده این یک نوع میسا و است به دنبال کشف مراد نیستی پس زاویه بس اینجا سوال آیا ما در قرد در زواهر حجیث زواهر دنبال کشف مرادیم که آیا مراد متکلم چیه و ما چطور به این مراد برسیم یا در با حجیث زواهر دنبال کشف مراد نیستیم دنبال اون نیتاق و هستیم یعنی بنایه اوخلا بر این است که اگر گفتن آ از در دو مرحله تفخیمن و تفخیمن این که جمعه تفریمه با تفهمه این چون نقصه اساسی این نیستاق و اقلالیست یعنی من وقتی گفتم آخ خوب دقیق بکنیم این معنی خاص کردم و می شما هم این معنا رو خوب فهمید خوب دقیق کنیم یعنی این نیست که لحظه ورد یک مساله باشه من قصد بکنم اگر من قصد بکنم و نمیدونم شما میفهمید یا نه بازم این ورد نیست این لغت نیست پس قوام به تفحیم تفحیم. این به تفهیم و تفهیم به این من وقتی گفتن آب این شما هم وقتی میگید آب همینطور شما هم وقتی لطف آب رو از من میشنوید همینطور یعنی میگید من میفهمم که این وایع خاص رو خواسته ببینید من میفهمم و اونم قرص کرده هر جو. من میفهمم پس اساس لغت هر دو با هم اینطور نیست یک طرفه باشه یعنی هم من فقط تفهیم دارم و میدانم شما هم همین معنا رو میفهمید درسته شما هم که این معنا رو میفهمید می میگید من این معنا رو فهمیدم و گوینده این معنا رو اراده کرد یعنی یک ترته نیست قیمان لغت به ولی زن این میسا و من یک قصدی بکنم، یک لحظه رو کنم یک رو کنم. قصدی اما این درشان میتونم نیست. این برز نیم اما صحبت کردن و به لغتی دیگه صحبت کردن این برز نیستن نکته حساتی در بود جیت زبادر اینه هم تفهیم باید توش باشه، هم تفه باشه هم برای گویرده هم برای شهرنده. یعنی گوینده بگه من وقتی تفصم اینه اینو لحظه به کار میبرد و مخاطر هم این معنا رو میفهمه مخاطر هم دقیقا همینطور و لذا البته این یک مطلبی نیست که لحظ ما گفته باشیم یک قدیه لحظیه گفتید نه این بنای جامعه هست یعنی چون انسان یک موجود است. باید یک چیزی پیدا بکنی این روابط اجتماعی رو درست بکنه به مثل اولیویزا راهنکاری بکنه صد انگار ماشین بند رو خطرلی میکنه یه چیزی باید پیدا بشه که این روابط اجتماعی رو بهن رفت بوده این بیان و این زبان یکی از اون اساسی ترین است که این روابط اجتماعی رو بن رفت میده هم روابط اجتماعی رو در طول زمان آثار گذاشتگان رو, رو میبینیم وقتی شیخ یک مطلب نوشه ما که می‌خونیم هم می‌گیم می‌فهمیم و هم او قصد کرده فهمونه در باب لفظ اینطور نیست که من باش خاطرن صحبت می‌کنم وضع هست سلام شیخ هم که می‌گیم همگی تفسیر می‌کنه میگم من از عبارات شیخ اینه اینو اونم این معنا رو قصد کرده خب ما اگر این رو بردیم کل روابط اجتماعی به هم اصلا اساس روابط اجتماعی رو مینه، بیان. و لزاما خلقل انسان الله او بیان سابقا ارکد. از عجایب ذهن من از که ذهنمون کلی قصه از این حرفا. مثلا اونجا در اون آیه رو ادا عرابیشان میگن یعنی در مقابل ترفض، لدا در مقابل خدا با کن خودش ترفض پیدا میکن یک بار اینجا نداره خلقل انسان که انما همراه اصلا که انما همراه به جزو ماهیت میسه ذاتی یاد میسه که انما حقیقت جوهر یا غلط و فارسی گوهر انسانی این قدرت بیانه که اگر اون قدرت بیان نباشه علمه های بیان نباشه این قصوره که انسان نیست اینم هم همین پس بنابراین با این توضیح آدیهی داده شد نمیشه ما این مطالب رو تفسیر به زن و گمام و حالا زنده خاص و اصلا اون تصور که ما دنبال مراد متکردن باشیم، این رو باید بداریم چنها هاییم تصور رو باید بگذاریم روی اون چی که لحظ خودش دیگه بر اصلا استعمال بر اثر محاوره برشی زهور پیدا کردیم و لذا یک بحثی هم سابقا اگر یادشون باشه من چند بار ساله تکرار کردم تو همین کتاب کفایه کتاب های درسی ما معظم کتاب های اصولی چه درسی چه درسی تعبیل اجوری کردن ممکن از هر یوم که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا بعضی از آدم مثل من مثل از دستال های تو اغرافت بیشونه اشکال کردن خب امکان امکان داره چرا اون برسه امکان کردن؟ بیان وقتی وقوع بکنن امکان خب معلوم امکان داره چه مشکل داره؟ بزن محالاتی نیست استعمال لذار اکتر و منا امکان که داره باید بگیم حل یک سه خور استعمال لذار لذار مشترک نه که حل یمکه الان اگر در گره منزل این کنفیرسه باشه مبارس اصولی عقل سنت و از قدیم اله یوم ناختن لذاق امسال تحرادی یا قدرانی اونم هم همین اشکاله میکنه میگه چرا عالم بحث نمیدونه مضمون کلامش باید بگیم امکان داره واقع شده در حال از میگه ثبیت اینه که استعمال لازم مشترک در از معنا امکان داره اما ثبیت نیست عرفیت نداره قرینه میخواد اگر گفت جنی به اینه که مرادش طلا و نقره دو باشه قرینه میخواد و الا امکان داره اما ثبیت ما در اونجه این توضیح این نکته شمیه و این بحث هم از اول دوم شد. از شده از فوقها هم این نکته شمیه و صحیح همون امکانه نه یک سه صحیح همون بردی از مقابر آمده هلیون که چرا؟ چون رو بگن؟ اگر لحظ این امکان رو داشت در واقع ظهورات امکان مسابقه با غوره کن. اگر امکان داشته باشه لطف در مقام استعمال برای دو معنا امکان باشید؟ یعنی چی؟ تو تفکرین اینها چه بوده؟ ما در باب ظهورات دنبال کشف مراد نیستیم که آیا واقع شدیم ما در باب ظهورات در مقام صلاحیت نگفت در مقام دقت قطعه پنگی روشن شد همین که امکان داشته باشه نه در دو معناه بشه در کار برده باشه امکان مصادق بابا بوده که من هر کن در اصول مثال نداره در فکر هم خیلی تمثل به این نکره خب در صفح ما میشه به این مثال و خیلی هم تأثیر داره مثلا در باب ازده موت ازاله قرحان میگه هم برای هیز گفته که در برای صفح ب خب ممکنه اگه گفتیم در دو مشترک میشه در دو معنی ها به کارت ممکنه دقیق بخنم؟ بگیم ازده توی مطعه چون مطلعه مطعه مثل عهد دائم عهد دائم طلاقا در حال صبح روش در به اصطلاح حالت زنانهی هی ماهانه حالت ماهانه طلاق روش اما در حال مطعه این شخص نیست در حال مدت اشتمام شد که فهم وجود دیگه حالا یا مدت بخشی فرق نیکنی از این جهت، بین عبد دائم و عبد هست، لازم نیست این مدت تو ایام صحب روش. تو ایام هی در مدتش هم تو چندو به خلاف و تلاف خلافات تو ایام صحب خب حالا اگر گفتیم استعمال لبز مشترک در اکثر از معنا امکان داریم گفت عدت و مدت قرآن. بگیم اگر زن عدتش تمام شد این مدتش تمام شد و در حال طور بود دو طور این طور تمام بشه حیث ببینه طور دو بون که شده از از از اما اگر در حال حیث بود دو حیث فرمیکنه بیشه یعنی که در حال حیث بود باید قبر بکنیم، از حیث حاجت تاخل بشه از طور که درامت تا توی حیث دو بون وارد شد از از میشه. بشه اتقال ممکن است بگیم که مثل این مواحص محتمیز بر این نقطه پس این تعبیر پس درسته اینو کردن اینا توجهه نتده حتی اشکال کردن که چرا علماء بسن یوم که استعمال محترم اون ذرافت نقطه یوم که روشن باشن شده اگر دنبال کشف مراد باشیم یوم که به درست نمو کنه بحث از وقوع بکنیم اما اگر دنبال کشف مراد نباشیم بگیم این لفظ صلاحیت داره این لفظ به حسب محابره قربی صلاحیت داره صلاحیت مساویس با اطباع زهور زهور تابع صلاحیته این که بگیم صلاحیت مساویس با زهور اسمش چیه میزا بغلانی. پس ما اگر دنبال کشف مراد بودیم حق با و اصولی اینه که اینه زهد کرده ارس که مرحوم آزیان بسته داره اختصر ما هم نداره مرحوم آزیان قبول نمی کنه زن نیست چون تصریف میکنه که نقطه ششم مرحوم نیست و دنبال که مرحوم نیست نقطه اینه اواد ظهور فی پس بنابراین حقه در مقال است که مقاله رو که مرحومه ملا محمد امین استراغازی و قبل از ایشان صاحب معادل که بعضی از احاسوس اصول و در جایی به خطابات مشابه در جایی کل خطا یا راج به خصوص احکام کتابی که متشابهات مشابه باشه نباشه و این اینها به خیال داره انصافا قابل قبول نیست مقاله محض محققه قومی هم که این از ادعاه ظن مطلق حجته اون هم قابل قبول نیست مقاله مشهور اصولی مثل مرحوم اینا از باب دنده‌خاس اون اونم قابل قبول ما اما واجب ظهور طرفستون حساب و خداییه منطقی بشه چون بین متکلم و مقصودین للفهام این نه نیست این حساب من وقت دارم صحبت میکنم شما نشستی منو خطاب به شما میتره که چه نموش گوش الان را خیلی خوبه صحبت میکنم حالا شما صحبت کردیم. مرادتون اینه من به تن آمیگیره نمیخوام این ذلت میشه که خارج از اینجا که دیگر نمیخوام وجدان اخدری مطلب میشوره مولانا نمیگه صدق من هم مسئولم اون بحث دیگه که چه هم در احکام جدی نه اون که خارج از بحثه چون توش از متفهم نیست، بحث من به لغت اینگلیزی به شما خب چون تکمید تجمع... نه اون قصد تفریم میکنم اون من تفاهم نمیکنم خب حتی اینگلیز رو برگه همون من تفاهم نمی‌کنم. تقام لغت بیش از تقسیم و تفاهم دیگه تقام دیگری نداره بله یه بست دیگری مفرش شد ما اون بست اینه که وقتی تقام لغت بر تقسیم و تفاهمه این ایجاز رابطه به این لفظه معنا نمی‌کنه. این همون محتل تأخوضه که مرمون اصطاق قایدن اینه اول بحث متعرض شده که تکرار نمیتا بگنیم میگه لحظه ها با ایمایه اخارجی رابطه نداره این رابطه بر اساط تدایه معانیه من قصد تفتیم میکنم و قصد میشونم و شما تفهمون میکنید رابطی ایجاد نمیکنه. اون بحث دیگر که آیا این قصد و تفهم ایجاد یک رابطه دینی این لحظه و میکنه یا نه امس از کردیم ادهی که رابطه به مفاد علت تامن در حقیقت اون علت تامه رسونده تف... ما رو به تفشیم و ما ما این گاهت برسیم ادهی امسی مرمان استاد منکر رابطه رابطه وجود نداره و ما در اول بحث این رابطه یه تخمین بندیه که یه کشنگی کردیم گفتیم کسانی که منکر رابطه هستند یکن، کسانی که رابطه هستند یا علیت تامو میدونن یا مقتضی میدونن یا یک نوع رابطه به اصطلاح غریزی میدونن نوع رابطه ذاتی در طبیعت انسان و حیوان که غریزی فن نظریه شرطنگیزای شعر وجوده یا یک نوع رابطه روانی میدونن مثل صدای ما، مثل این به اصطلاح چهار تا رابطه که تقریمی تقلیم یا رابطه اعتباری میدونن چهار تا تقریمی بود اعتباری یا حقوقیت مطلق میدونن یا از قبیل علامت یا از حلامت میدونن یا از حقیقت تخصیص و لفظه المعنه میدونن یا در حقیقت اینو اقتصاص و لفظه المعنه بگه اینو مبانیش اینا چوبیه این هشت آب یک کم نفسی رابطه نقطه این نه تا یاده دارد در از ما این توضیح این بحث دیگه الان ربطی به حجیت زواقه نه از از ویوبنهای حجیت زواقه هست در اول توضیح دارید اما این یک تفسیر و تحریر دیگه در مصلا حضا که این هست این بلا اشکال اگر ما نفیه رابطه بکنیم حجیت زواقه با مشکل رو بروشه این هست قبول دارید و اگر اگه رابطه بکنیم بجوکنین، خود جذبات، آقا خیلی راحت تر واس میشین. که چند من من در هم ثابته، ثابته تا مثلا مجموع استاد مشترک قبول نداشته چون رابطه پای نیست، میگه نمی‌شه انسان بحث بکنه به این مثلا چند تا معنا، این نمی‌شه. چون مشترک مثل ایشو مشترک نداری و قبول نمی کنید توی لوقت مشترک کنید حالا من بارد این بحث داشت که تا این است که تابعایم که اول این بحثید سوزم بیار درمه پس حق در مقام انشاءالله به نظر ما روشن شد و صحیح در مقام به نظر ما اینه این مقالاتی در صحبتها و گفتهایی در اینجا آمده محل اصواه نیست البته یک مشکل دیگری در خصوص خصو آقایم ملاحظه کردن که اگر ما بخیل دنبال ظهورات و حد وضوحه اینو درسیم هم خیلی زبان رعایات مشکل داره یا هم خیلی مشکل داره این اینجا این مطلب هست این محلت هست لیکن وجود مشکل منش نیست که از خواهده هم رعیت بکنیم اون حل مشکل رو یا افتیات میکنه یا اصطاق میکنه اینجا یک کاری با حل مشکل بشه قاهده حمومی رو بله به این نتیجه درستیدم که اگر ما بخواهیم در فیق درستیم به اونجایی که وضوح داره خیلی کمیت موقع گردم تحسیص و, و فیقه این جهید یا با قول مقدمات امتدام خروج از دین لازم میاد نه خروج از دین لازم میاد رو جمع شواهد البته این آزای سخت هست اما میشه انسان با جمع شواهد خیلی از مقالب رو وضوحش رو پیدا با کنه با طول زمان و ب هنوز ما جهت مشکل نداریم یعنی شبابه رو تو می توانیم اینقدر روشن قرار که وضوع و ضعوری پیدا کنه البته جاهایی هم داریم و جاهایی هم باید به تحبت مراجعه کنیم قبول داریم هر سرق ما با که اون مخر آیه که در سر موارد تحبود مراجعه ما قاربا در 20 مورد 15 موارد تحبود به دیگه و سر که این رازگوشایی رو بینن داری ما تحبود لفت مواردی پیش نیاد که باید تحبودا قبول بکنه لیکن بیشتر موارد به نظر خود ما رمزگوشایی شده و مشکلاتش حل شده و وضوع و خودش محفوظه الان یکی که ما کار اگر ما در مقام خارج با یه مشکل برسور کردیم این رقیت از اون قواهد کلی نیست حالا گایی تو فقر ممکن از یادتو بعد از جهان ما یک مشکل برطور بکنیم اون بحث دیگریتون رفتی به اصل حجیت زواهر و اصل کاربرد برده قرآن در مقامات و معارف مختلف در این جهت ندن کمان اینکه که اشکال بعد از آیات کتابی رو ابهام داره ولی که من توضیح توضیحاتش رو سابقا کردم که بعضیشون می‌رسن توجیه الا ما یوش لا خوب این ابتدا هم ما خیال ابهام داره واسه به ذهن ما این هم ابهام نداره یعنی پیغمبر اکرم مثلا اصل اول بره نیته هر چیزی مگر اینکه تحریم وارد بشه خب چون یک در تحریم ها بنا بود در سنت رسول الله باشه بیان نشده در قرآن چون ارجاع ما به رسول الله ماشه. یعنی به طور کلی دیروزم روزم مثال هایی داریم در, در دنیای اسلام این جزء مسلمات قرآن و سنت باید با همدیگه مضمومن تفسیر بشن نمیشه قرآن رو یک طرف بگذاریم و سنت رو یک طرف بگذاریم اصلا یک تراغوزی پیدا کردن یعنی باید درست وقتی گفتم مثلا تقصید وجوه ها خود تخصیل رو چون پیغمبر از بالا می و از بالا بشون نگیم آیه اطلاق داره از کارین خوبت هم می شود چون 23 سال مثلا پیغمبر این کار رو انجام دادن در تایه مدت داغمان از بالا شدن دست از بالا شدن تمستو که به اطلاقات به این لحاظ مشکل داره این نه این مشکل لغته این به اینکه نهره قانون و تشریح در اسلام اینطوری طوری بوده. و یه توضیح هم اعز کردیم حتی حتی در جاهایی که ایک به کتاب ثابته و یه قسمتی به سنت اینقدر با هم ترابط دارد ما اگر بخوایم سنت رو تنها انجام دهیم، عمل سنت هم ساخت نمیشه بقیه بقیه. اصل رکوع از کتابه برکب و مرکب اما این که ذکر روکو باز گفته بشه این از سنته حالا شما روی روکو انجام دادین ذکر نگفتین اون حساب نمیشه سر بلند کردین ذکر گفتین اونم حساب نمیشه بگیه خب من همشه انجام دارد روکو انجام نم خب یه تعمل بکنی یعنی این سنت و خریده، اینقدر با هم مرتبطن با این که ذکر روکو رو پیهم بر جرد کرد نمیشه لیکن این جعل پیغام در یک جوری است که با جعل کتاب مرتبط است به حیث که اگر جعل انجام دادی این دیگر معمون دریافت صدر ایجاد اگر جعل پیغام بر مبنای کتابی انجام دادی دریافت صدر این ارتباط حقیقی که ما بین کتاب و سنت تصور بکنید این این ارتباط حقیقی کتاب رو به انجام بدین امر ثابت نمیشه خب بگید فرقه و رو مراکبن رو روو کنه امر فرقه رو ثابت بشه اونم ثابت نمیشه ذکر رو هم که به هنگام برخوردن انجام داد در حال قیام لا امر امر اون ثابت بشه امر اونم ثابت نمیشه نه امر فرقه اون ثابت میشه نه امره که تسبیحات بگیم این عذر که البته این حالا نشیده روشید اصلا یه راه هایی برای فهم شریعت مختص این شریعته. و لذا اون دهست اصولی که آلافی ظاهرش کار هاست بیا آقا من امره ارتبارو رو ارجام بزنم باید ساخت بشین نه خیلی همه ساخت نداشم به خاطر یکی اندماج بسیار قدید که ما بین سنت را فریده شده به هیچی که امره فریده متقید شده به سنت امر سنت هم متقید شده به فریضه مجموعاً یک امرن که اگر با هم تکشیه خارجی کنن مثل این است که شما چاردیواری به رست میکنید اما سفیدکاری رو بیرون بکنید نه سفیدکاری با تو همین چاردیواری واجیده سفید سنت نسبت به فریضه مثل سفیدکاری اتاق نسبت به اتاقه اگر شما سفیکاری ایجاد که در غیر او نیست فقط درست همین بدون که اینا با هم مندمج شده اند امر هم با هم مندمج شدن امر ارکعو با هم خطوی با هم مندمج شده به این حسی که امر ارکعو به تنهایی ساقط نمیشه امر خطوی هم به تنهایی ساقط تنهای نمیشه این موله اندواج بسیار شدیدی که بین کتاب و بین فریضه هست ان دیگه بعد کشیدیی باری